تضادهای معنوی به آن روز هنگامی که مشغول کار پشت میز تحریرم بودم، روزارتارس برای مدت درازی به من خیره شده بود پس از مدتی سرم را بلند کردم و متوجه شدم که روی صندلی نشسته است روزارتارس من در انتظار نشسته بودم چرا به سینما رفته بودی؟ مگر نمیدانی که کار زیادی برای انجام دادن هست پال. یعنی من استحقاق یک لحظه استراحت هم ندارم؟ ریبا تارتارس. خطاب شدگان هرگز استراحت نمی کنند بنابراین هرگز تصور نکن که می توانی از زیر بار وظیفه ایشان خالی کرده و آن را با کار دیگری جایگزین کنی این امر ممکن نیست در حال حاضر به عنوان استاد اک مطالب بسیاری برای گفتن به تو دارم به زودی آغاد به دیکته کردن یک کتاب به تو خواهم کرد این کتاب قرار است یک داستان اسراری باشد که جهان را به حیرت خواهد انداخت داستانی از تضادهای معنوی در بشر لیکن کارهایی وجود دارند که می پیش از آن به انجام برسانی نیروهایی که ساختار آدمی را برپا نگاه میدارند در صورتی که به درستی ردیف شوند به قدر کافی در خود مواد منفجره دارند که سازمان وی را از هم بپاشند و این دقیقا همان اتفاقی است که هنگامی رخ میدهد که ما در ایجاد تعادل درون خود شکست خورده و قادر نباشیم فهم درستیت از های معنوی تعبیه شده در خود به دست آوریم به این ترتیب نخواهیم توانست از دوام تضاد های معنوی بین قطبین نخیش درون خود اجتناب کنیم تا اینجا گفتم که قدرت درون آدمی از یک طبیعت است و تنها در رابطه با نحوه ای که ما به آن واکنش نشان میدهیم نتیجه حاصله میتواند تفاوت های زیادی داشته باشد. اگر یک علت منفی را به کار بیاندازیم بدیهی است که نتیجه معکوس شده و به سوی قطب تحتانی نشانه میرود. و حاصل کار یک نتیجه منفی است و بالعکس به همین علت مادیگرایی از طبیعت منفی می باشد. زیرا با ارتعاشات خشن و سقیل تر از اتم ها سر و کار دارند. از سوی دیگر هرچه افکار بالاتر می روند، ارتعاشات و اتم هایی که در ساختار این اندیشه های برتر شرکت دارند، لطیفتر شده و به سوی نواهی نیروهای هرچه معنوی پیش می روند. و به سرچشمه خدایی هرچه نزدیکتر می شوند. به منظور تعریف کردن دو تضاد اساسی در بشر که عموماً خدا نام دارد، به معنای نیکی و زشتی یا مثبت و منفی به گذار نام منصوری به اطلاق کنیم استلاحاتی علمی مانند خاصیت تهاجمی و انتعالی یا کنش پرزیدی دو کیفیت بنیانی که در تصاحب بشر می باشند منچه این دو کیفیت را در زبان عرفان خیش درونی و خیش بیرونی یا خیش, پر... خیش برتر و پستر وگاهی هم قطب مثبت و منفی می نامند های هندوی آنان کل و پریت می باشند تا هنگامی که آدمی در جهانهای تحتانی زندگی می‌کند، دستخوش دست خوش حاصل از کشمکش این دو کیفیت درون خود خواهد بود نبرده بین این دو قطب ممکن است در مواردی بسیار جدی و طاقت فرسا گردد که در این صورت معمولا کم دوام و نزدیک به نقطه انحلال ارتعاشات ستیز می باشد این تضاد موجب مسدود شدن جریان معنوی در آدمی می شود که متقابلا در ارتعاشات فیزیکی و ذهنی نیز اختلال ایجاد کرده و منجر به بتالت و ناامیدی در فرد می گردد اگر این وضعیت ادامه یابد به صورت های مزمن ستیز همراه با عوارض فشاراور مانند خستگی مفرت احساس شکست و یا در نمی آید. عواقب مسدود شدن مجاری قدرت معنوی درون آدمی می تواند بسیار اصف بار باشد. البته ما میدانیم که پناه بردن به آتماساروپ استاد یا کالبد معنوی او چاره مقابله با تمامی تضادهاست. اما چه بسا که ما بیش از آن هیجان زده می شویم که بتوانیم در پاسخ به انگیزه خود نرسیدن رسیدن به خدا موفق شویم و عوارض آشکار تضاد درون ما به جای التیام رو به افزایش می‌گداوند این عبارت آخر در خصوص بسیاری از جویندگان محقق می باشد و ما معمولا این وضعیت را تشویش افراطی می دهیم اگر طبیعت تهاجمی در تو بیش از حد در جهت رسیدن به خدا انگیخته شده باشد در حالی که کیفیت توازو معترضانه آن را بیش از حد دشوار و طاقت فرسا قلم داد کند به طوری که تلاش متوقف بنابر بنابراین میباید چارهی برای آن وضعیت بیاندیشی. اگر ما خیش درون خود را به استاد واگذار کنیم به تسلیم حقیقی رسیده ایم و هرگاه این عمل به طور کامل انجام پذیرد میتوانیم یقین داشته باشیم که دیگر تضادی درون ما وجود نخواهد داشت و استاد صلح، آرامش و هماهنگی به روح اعطا خواهد نمود. چه بسا هنگامی که دست از اشتیاق کمال برکشی، همچون سارقی بر تو شبیخون میزند. هنگامی که فشار و کشاکش درون فروکش کرد، قدرت اککار خیش را درون فرد آغاز نموده و های معنوی و ذهنی فرد به او بازگردانده میشوند. یقینا خواهی پرسید که پس من میباید دست از تلاش مشتاقانه و خالصانه خود برای رسیدن به خدا برکشم؟ خیر، ولیکن یک چون این شوقی می باید آری از فشار، حیجان و تزاد ادامه داشته باشد زیرا اینها از جمله وجوه منفی ساختار آدمی می باشند. با این وجود به خاطر داشته باش که این دو طبیعت در آدمی در کشمکشند تا او را به خدا نزدیکتر کنند زیرا درس هایی که این کشاکش‌ها به طور روزانه برایت منظور کرده اند تنها برای این است که تلاش معنوی لازمی را که در پشت هر واقعی نهفته است میسر سازند این علت اصلی هشداری بود که بودا به ما داد تا در تعادل زندگی کنیم به عبارت دیگر خاصیت تهاجمی در آدمی در خدمت تأمین متراکم نیروی تلاش او در جهت ازمیان برداشتن موانعی که بر سر راه رسیدن به خدا قرار دارند به کار می آید لکن وجه فروتن که طبیعت اقتصابی آدمیست است این, این تدبیر می کند که منافع ما به طریق معکوس آن بهتر حفظ می گردد. و این عمل با ذخیره انرژی ارتغاشات به واسطه اجتناب از اعمالی به دست می آید که بیشت حد دشوارند یا اعمالی که می ترسیم منجر به شکست ما شوند به این ترتیب در ظاهر امر این چونین به نظر می رسد که ما با شرایطی مدارا می کنیم که منفی هستند به اینکه تلاشی در جهت ستیز با آنان به عمل آوریم به این ترتیب هنگامی که ایسا اشاره کرد که گونه دیگر را به همسایت کن تا ضربت زند منظورش این بود که با واگذار کردن خود با آن بی حرمتی بی این که انرژی خود را صرف ایجاد خشونت فیزیکی کرده باشی. و خود را در تار و پود کار ما ساخته و مجراهای نیروهای روانی را برای ادامه یافتن در چندین تناسق دیگر در خود باز کرده باشی دشمن پیروز می شدید. پس می بینی همون است که هم وطنان امریکاییت از اصطلاح چرا بیهوده تلاش کنم استفاده میکنند. کنند. قضیه از این قرار است. خاصیت تحاجمی در آدمی سبزی است که اشاره می کند به راه خود ادامه داده و تلاشت را در راه رسیدن به خدا دوام بخشی و چه تصمیم پذیر؟ پذیرا؟ کنش پذیر؟ چراق قرمزیست که اشاره می کند درنگ کرده و وضعیت را بررسی کنی چون مشکلی در بین است حال این را با تو می گویم. در اینجاست که استفاده از قوه تبعیض در آدمی به یک هنر برتر بدن می شود. او مجبور است در تعیین اینکه آیا این نیروی اراده است که او را پیش می‌راند یا نه در حالی که تسلیم پذیری در طریق معنوی بیشتر به کار می آید قادر به تأمل باشد میلیونها مردم روزانه با مشکلات عصبی دست و پنجه نرم می‌کنند چون فاقد آموزش و پرورش در راستای تعریض صحیح می باشند اکنون بگو دار بگویم که تمامی غرایز درون آدمی به استثنای غریزه جنسی یا سکس همواره در تلاشند تا دی محافظت کرده و بقای او را دوام بخشند و نهایتا او را به نزد خدا پیش خواهند برد البته انگیزش جنسی همواره در جهت حفاظت و دوام بخشیدن به اتحاد زن و مرد و راندن آنان به سوی آگاهی معنوی برتر در کوشش است و اما که استاد یک قدم پیش میگذارد تا حل همه مشکلات فرد را عهدهدار شود در این واقعیت نهفته است که یکا یک انگیزش ها و مکانیسم‌های درون سازمان ذهنی آدمی در حال انتخاب و پیگیری منافع فرد به طور اهم باشند اما کورکورانه و به نحوی غیر منطقی به این ترتیب اگر خود را به استاد تسلیم کنی همه ی زندگانی تو درجهت برآوردن یک مقصود یگانه سازماندهی خواهد شد و آن پیروی از اراده خداست دیگر اینکه اگر عشقی سالم و خالص از برای استاد درون داشته باشی بار طاقت فرصای تحقیر نفس از شانه هایت برداشته می شود و سفر پرماجرای معنوی برایت سهلتر امکان می یابد. البته اعتقادات منفی یا اعتقاد به فقدان قابلیت همیشه در ما موجه به بیدار شدن وچه انفعالی و کنش پذیر می شود در صورتی که به این وجه بیش از حد میدان عمل داده شود یا در طول زمان دوام یافته و کنترل کامل وضعیت معنوی فرد را در دست گیرد به مصیبت باری پیش خواهند آمد پیشوایان فلسفه شرق همیشه بزرگترین دشمن تسلای ذهن و آرامش خاطر را آرزو دانستند و به این ترتیب نیاز به اجتناب از آرزوها را آموزش دادند بنابراین این در کل شرقی ها توانستند به آرامش خاطر دست یابند ولیکن به بهایی بسیار گذاف توانستند این تضاد درون را خاموش سازند. آنها بر طبیعت تهاجمی خود غلبه کردند و وجه تسلیم پذیر خیش را به صد در عوض آنچنان تسلیم به محیط طبیعی خود شدند که هیچ تلاشی در جهت بهبود وضعیت مادی و شرایط محیطی خود به عمل نیاوردند. این نتیجه تعالیم مسلمانانی بود که قصد داشتند بر توده ها حاکم شوند. و مقامات روحانی خود را وادار کردند رسالات مذهبی را بازنویسی کرده و همان به ذهکاری را که در مورد انجیل انجام شد در خصوص نوشتجات مذهبی اسلام مرتکب شوند. مشکلی که در مقابل مقامات مسئول هند آزاد قرار دارد این است که مردم هند را دوباره آموزش دهند که از خود مواظبت به عمل آورند و در خود اراده آزاد و خاصیت تهاجمی را بازسازی کرده و در راستای اقدام به ایجاد روحیه زنده و فعال به کار گیرند به همین علت است که میبینی در سراسر هند هر کسی که از خود تمایل به اکتساب معنوی و توسعه ارکان درون نشان داده است برای مردم به بوتی بدل گشته و مقام و منزلت بزرگی در حقش قائل شدهاند این نوعی از بوت می میباشد بیشتر این تعالیم امروز در غرب توسعه یافته و ذهن غربی هم به همان اندازه ذهن شرقی دوچار خرافات این گشته است. آرامش خاطر به بهای این نصیب گشته که تمامی خواستهای قریزی و مثبت آدمی در جهت توسعه در تمامی جهانهای خدایی مورد چشم پوشی قرار گرفته است. هندوها توانستند به آرامش ذهنی دست یابند اما اشتباهن و نابود کردن قرائزی که به تضاد درون دامن می‌زند، اما یک لازمه در جهت توسعه معنوی فرد محسوب می شود. مسیحیان و یهودیان در تلاش پایان بخشیدن به تضاد درون به این ترتیب عمل می که طبیعت کنش پذیر و منفی را تحت استیلا قرار داده و به قطب متضاد آن اجازه عمل دهند اما آنان نیز این اصول حیاتی را به غلط به کار گرفتند یک غربی اغلب قربانی افکار حیجان زده و منفی خود می که وجه تسلیم پدیر را تحریک نبوده و از تسلط آرامش و توسعه درونی جلوگیری به عمل میآورد. ما به تلفیق فلسفه شرق و غرب نیاز داریم اما فقط تا به حدی که جنبه های انگیز و حراسناک آرزوهایی را که بی تردید دعوت کننده تضاد درون می باشند تحت استیلا قرار دهیم زیرا به همراه این تضادها اهریمن درون آن نیز حضور دارد. به این ترتیب ما می توانیم توسعه مادی و بیرونی خود را توان با آرامش ذهنی و تفلل درون ادامه دهیم. آرزوی شدید و عاری از تضاد از ضروریات حیاتی برای عمل کرده ما می باشد و امکانه به دست آوردن آن نیز میسر است. البته بالاترین شکل آرزو آن است که در جهت رسیدن به خدا و تمایل به کار و خدمت برای او ایجاد شده باشد. چون این روحیه ای تا به حدی تشویق کننده است که همواره بهترین را در آدمی طلب می کند. اینجاست که من به عنوان استاد قدم پیش میگذارم و دست تو را گرفته به سوی بالاترین منزلت ها راهنممایت می اینکه اگر همیشه این روحیه را حفظ نمایی که خدا کاری خواهد کرد که همسایعت درست آنچه را که برایش مفید است به بندد و از این دیدگاه همه اعمال او را نظاره کنی به ترتیبی بسیار ظریف همین روحیه را به او انتقال داده و موجب خواهی شد که استاد در هماهنگی با اندیشه‌های او نیز عمل کند مشروط بر اینکه مقاصدت با علت استاد حق در قید حیات هم‌آواز باشند هرگاه روز بدی داشته باشیم یا یک رکود عمده در روند کارهای روزانه ایمان رخ دهد معمولا به این علت است که استاد را فراموش کرده و به وجه ضعیف و کنشپذیر خود اجازه صعود داده ایم. اگر در دیدگاه متضاد آن قرار داشته باشیم لحظه ما سرشار از علت مثبت گشته و به وجه مثبت و تهاجمی ما رخصت میدهد در راستای ترقی و آزادسازی ما از هر گونه محدودیتی عمل کند این را به خاطر بسپار. تأثیراتی که میتوانی با اعمالت به دیگران انتقال دهی بسیار قدرتمندتر از آن چه خواهد بود که به طریق سخن گفتن میتوانی باقی بوداری اگر بخواهیم دیگران نه تنها در خصوص ظرفیت‌های ما، بلکه درباره خودمان هم خوب بیاندیشند می باید موازه به افکارمان در خصوص خود و آنها باشیم. متأسفانه وقتی تصور می‌کنیم که می توانیم درباره دیگران بیندیشیم بدون اینکه آن را بیان کنیم، و اینکه چون این امر کاملا خصوصی است و آنها پی نخواهند برد، دوچار خطا شده این. چون درست، در همان موردی که ما بیشترین اشتیاق را می‌ورزیم بر اینکه دیگران درونیترین افکار و احساسات ما را نسبت به خود ندانند، بیشترین احتمال این امر زایده می‌شود که آنها آن را احساس کنند یا از طریق دریافت‌های روانی آن را کشف کنند. افکاری که باری از عاطفه ترس و هیجان در خود داشته باشند بیشترین قابلیت انتقال به دیگران را دارند به خصوص هنگامی که از فاش شدن آن حراس داشته باشیم پس به تو میگویم که خلوص صمیمیت و نیت خیر را در خیش پربرش دهیم به گدار اندکی خصوصیات فرد کمالگره را مورد مطالعه قرار دهیم او معمولا شخص باهوش با وجدان و پرتلاش است. ای از افراد بسیار دوست داشتنی، اما در این حال کسی است که در تلاش به خاطر کسب بعضی فضائل، اشتباهاً افراد می‌ورزد. او اغلب از فشارهای عصبی و نومیدی حاصل از عدم توانایی در اکتساب درجه‌ای از کمال که بدان اقدام کرده است، لنج می‌کشد. او در خصوص دیگران بسیار بخشنده و بردبار است، اما برای خودش بسیار سختگیر و کارفرمایی به نهایت بیگذشت است. او بیش از حد کوشش می‌کند و همین را باید بفهمد. او با آموختن اینکه تلاش خود را آرام بخشیده و فشار و حیجانی را که موجب تضاد و فرسودگی می‌شود از کارکرد خود حذف نماید، می‌تواند هرچه بیشتر به درجات کمال دست یابد. گاهی با بیتفاوتی کامل نسبت به نور این نتیجه آید می شود اما با تمرین حضور استاد تو همه قدرت های خود را برای قدم بالاتر در طریق متحد کرده ای. تنها من می توانم به تو کمک کنم هیچ منشه دیگری برای کمک ندست نیست و تو می توانی بیاموزی که حضور مرا حس کنی مشروط بر اینکه با ایمان و وفاداری مطلق به طی طریق ادامه دهی زیرا من همیشه با تو هستم این وظیفه درست تو تشخیص دادن حضور و رهنمودهای من می باشد شب بخیر. با این کلام به نظرم آمد زبازارتارت به هوا بلند شد و در نور چراغ مطالعه ناپدید گشت گویی شعاهای زرد رنگ نور بودند که کالود را ساخته بودند